بخش هفتم آینده فلسفه روشنگری فضاینده در باب کاوشی که شاید پایان ندارد تقریبا همه فیلسوفانی که در زمان حیات خود مشهورند، اندکی بعد از یاد میروند. تنها شماری اندک، خصوصا کسانی که در این کتاب از آنها یاد شده است، نامشان پایدار می ماند. و وقتی در نظر میگیریم که در طول بیش از 2500 سال فقط همین عده نام دارم به این نتیجه میرسیم که تعدادشان زیاد نیست. بدین سبب ما در این اثر دوشا دوش بزرگان گذشته به بحث درباره فلاسفه زنده نپرداختیم. میتوان نسبتاً یقین داشت که اگر بنا باشد 100 سال بعد از فلاسفه امروز نامی باقی بماند، فقط نام یکی دو تن خواهد بود. بقیه به همان بوته فراموشی سپرده خواهند شد که بیشتر فیلسوفان نامی قرنهای پیشین سپرده شدند. اسلوب فکری رایج هر نسل نه تنها نشانگر آینده نیست، بلکه به نحوی کمابیش بیش محتوم محکوم به فناست. ما در این کتاب فقط از فیلسوفانی سخن گفتیم که اندیشه‌هایشان جذابیت و اهمیت پایداری داشته است. اینها برعکس دیگران، کسانی هستند که معمولا بعد از مرگشان بیشتر تاثیرگذار بودند. برای نمونه لاک همه فلسفهاش را در قرن هفتهها انتشار داد ولی در قرن هجددهم بود که تاثیر تاریخیاش را بر اروپا و آمریکا گذاشت. زندگی مارکس سراسر سر در محدوده قرن نوزدهم گذشت ولی در قرن بیستم بود که اندیشه هایش دنیا را دگرگون کرد. در سطح پایینتر از لحاظ نفوذ، پ سال از درگذشته وودگشتن میگذرد ولی وی در مقایسه با زمانی که زنده بود اکنون در فرهنگ ما چهرهی پر اهمیتتر است. در اون زمان تصور هم نمیشد که او چنین منزلتی پیدا کند. این واقعیات طبعا نشان می دهد که فلسفه در آینده نزدیک احتمالا از بزرگانی که به تازگی در گذشتند کاملا تأثیر خواهد پذیرفت. در واکنش به چالش های وجودی که نیچه در برابر ما نهاد رگعی غنی در هایدگر است که باید سر از معنایش درآورد. و نیز در واکنش به چالش‌های علوم پیوسته در حال تغییر و پدید آمدن بیشتر و بیشتر جامعه‌های دموکراتیک های غنی در پوپر هست که باید به مفهومشان پی برد. علاقه سیری که مردم دموکراسی‌های نوین به آثار پوپر نشان می‌دهند همین حالا هم جالب توجه هست ولی این تنها یک گوشه از صحنه است. خب، دیگر چه؟ چه چیز تازه ای خواهیم داشت؟ بی گمان که موضوع فلسفه را برگشت ناپذیر تغییر دهند ده در مانند گذشته پیدا چهره چهرههایی چون دکارت و کانت که بعد از آنها در فلسفه دیگر هیچ چیز به حال خود نماند از آنجا که گذشته تاریخی ما بسیار کوتاه است و آینده پیش رو بی اندازه طولانی احتمالاً بزرگترین و روشنگرترین ها در فلسفه نپشت سر که پیش روی ما قرار گرفته است متاسفانه این بینش هایی که فلسفه را دگرگون می کنند قابل پیش بینی نیستند اگر همین حالا می توانستیم آنها را پیش بینی کنیم همین حالا هم در چنگ ما بودند ولی در آن صورت دیگر متعلق به آینده نبودند به سخن دیگر همانطور که کسی پیش از کانت نمی توانست آمدن کانت را پیش کند ما هم نمی مهمترین تحولاتی را که در آینده در فلسفه رخ می دهد پیش کنیم پذیرش این امر شاید دشوار باشد اما واقعیت این است که شکل ی مهمترین وجوه فلسفه بر ما مجهول است اما میتوان با اطمینان خاطر تحولهای کم اهمیتتر را حد زد که برخی از آنها بیشک جالب توجهند از شیوه های تحلیل فلسفی در مورد شمار بیشتر و بیشتری از موضوعات استفاده خواهد شد حادترین اینها مسائل سیاست عمومی خواهد بود ولی مباحث دیگر هم از موسیقی گرفته تا امور جنسی و بسیاری مسائل دیگر که به فکر بسیاری از فلسفه گذشته نمی مورد تحلیل فلسفی قرار خواهد گرفت. و نیز چنین می نماید که فلسفه بار دیگر اقبال همگانی یابد و ارج آن نزد مردم بیشتر شود. در بریتانیا در سالهای اخیر فلسفه برای نخستین بار جزء تعلیمات دوره دبیرستان شده است، تازگی از مشاورانی در حوزه اخلاق بازرگانی دعوت می شود در جلسات هیئت مدیره شرکتها حضور یابند و حکومت ها از فلسفه می خواهند قوانین مسوّب را مورد بررسی قرار دهند. این تحولات همه نسبتاً جدید است. این فعالیت ها احتمالاً گسترش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر، جماعت کتاب هم به فلسفه دلبستگی نشان می دهند. در سالهای اخیر، یکی از کتاب که در سطح بین المللی پرفروش بوده دنیای صوفی به سال 1991 نوشته یوستین گاردر است. این کتاب درامدی است بر تاریخ فلسفه در قالب رومان که برای تاریخ فلسفه قالب دور از انتظاری است. یک نسل قبل تصورش را هم نمی‌شد کرد که چنین کتابی به چنین موفقیتی برسد. پس چشمنداز فلسفه در جامعه ما امیدبخش است، ولی فلسفه از یک لحاظ شبیه موسیقی است. از این لحاظ که با وجود استفاده‌های عملی گوناگونی که از آن می‌شود، ارزش اصلیش در نفس آن است. ما ای بسا به علت اهلت محدودیت‌های بشریمان هرگز نتوانیم پاسخ پارهی از اساسی‌ترین پرسش‌هایمان را پیدا کنیم. ولی همان گونه که در این کتاب کوشیدیم نشان دهیم. می در ادراکمان از وضعیت انسانی به پیشرفتی چنان ارزشمند نایل شویم که حتی اگر هم هیچگاه از آن نظر به هدف قایی نرسیدیم خود این سیر و سیاحت را تجربه ای انقدر سرشار و غنابخش بیابیم که ارزش داشته باشد به خاطر خودش به آن بپردازیم پاسخ نهایی شاید وجود نداشته باشد ولی چیزهای آموختنی بسیار زیاد است